فصل یازده امام رضا علیه السلام ربایی ولادت امام رضا علیه السلام تبریک میلاد رضا می آید سلطان سریر ارتزا می آید قدم شاه خراسان سلوات یک قنچ نسل مرتضا می آید ربایی زوار امام رضا علیه السلام در راه خراسانم و در فکر رضا امید رسم در حرم آن مولا گفتند که از جانب ما زائر باش گفتند که التماسی از اشق و دعا شهادت علی ابن موسر علیه السلام در لحظه های آخر عمرش نداشت جان انزامن رعوف تمامی آهوان پنجاه دفعه روی زمین خورد بین راه آقای ما نداشت دیگر طاقت و توان پیچت به خود ز شدت زهری که خورده است از ظلم های بی حد معمون امام مان. در حجر منتظر که جوادش ره رسد تا جان دهد به دامن فرزند خوبشان کی می شود دوباره رسم باز در حرم در صحنتان دوباره شوم باز روز خان کی می شود دوباره رسم باز در حرم در صحنتان، دوبار شوم باز روز خان